حد نظر از این وجود موضوع،, موضوع نفسی بلکه وجود خیلی وجود خیلی به معنای مانهیت و از از جرایان حصول در اطراف مجموعی آیا اصول در اطراف مجموعی جاری میشن یا نمیشن این مبتنی بر اینه که قایل بشیم به وجوب موافقت اتظامیه یا عدمش پس وجوب یک وجوب شرعی نمیتونه باشه بلکه یک وجوب شرکیی به معنای معنعیت وجوب موافقت اتظامیه از اجرای اصول در اطراف مجمانی لذا خیلی از کلمات که اینطوری تعبیر کردن از اینکه در همه تکالیف شرعی آیا غیر از موافقت عملی یک موافقت التزامی هم لازم تا اینکه ثمرش در این ظاهر بشه که با مخالفت کردن عقاب برش متلزم بشه این بیاساسه بحث در وجوب نفسی نیست بحث در وجوب شرعی نیست بگیم ار کسی موافقت التظامیه رو انجام نده امتصال نکرده و مستحق اقاب میشه بحث در اینها نیست از الان هشتاد درصد کلمات همینطوری نوشتن اگر کسی را آید نکنه اقاب برش مترتب میشه با اینکه بحث در وجوب شرعی نیست بحث این یک شرطیه و یک وجود غیری به معنای مانعیت موافقت التظامیه از جریان اصول در اطراف آیا مانعیت داره یا مانعیت نداره بحث از مانعیت مبتنی بر اینکه ما قایل بشیم به وجود مقهذی برای جریان اصول در اطراف علم اگر کسی شرایط بشه به اینکه در اطراف مجموری مقتضی برای جریان اصول هست و میشه از اصل, اصل تاریخی و اصل معممه جاری بشه بعد از قول به وجود مقتضی برای جریان اصول در اطراف یا یعنی اصول تاریخی اصول بعد از قول به وجود مقتضی بحث میشه که آیا مانع داریم یا مانع نداریم لذا بحث از مانعیت وجوب موافقت انتظامیه به نحو وجوب غیبی نه وجوب نفسی به متفرقه بر قول به وجود مختزیه جریان اصول در اطراف علم جمالیه که آیا مختزی هست برای جریان اصول در همه اطراف یا مختزی نیست خب خیلی ها نافی مختزی هست یعنی مختزی نداره من جمله خود مصنف قائل به عدم مقتضیه و خیلی از معاصرین قائل به عدم مقتضیان محقق نائینی قائل به یک عدم مقتضی به یک نحوه مصنف قائل به عدم مقتضی به یک نحوه دیگه یعنی <صوت> <صوت> ناویان مقتضی در جریان در اطرافش نیست محقق نائینی قائل به اینی که یک مشکل ثبوتی داره نمیشه تو در اطراف جاری بشه چون ترخیص در مأسیت ترخیص در مخالفت و شیخ انصاری میگه مبتلا یک محذور اثباتی یعنی تناقض صدر و زیل روایات که قبلا هم گفته بودیم در فر یعنی بین صدر و زیل روایات اگه بخواد اصل در اطراف بشه تحافظ پیش میاد موانع مانع رو میگن حالا این نمیان که قائلن به عدم مقتضی چه به خاطر موانع ثبوتی و چه موانع اثباتی اونها دیگه اینو بحث نمیکنن بخاطر اونها قائل به مقتضی نیستند و وصول در اطرافی نمیشه ولی اونهایی که قائل به وجود مقتضیه برای جریان وصول در اطرافه اونها میتونن بحث بکنن که آیا وجود به موافقت التزامیه مانعیت از جریان آن اصول رو داره یا مانعیت نداره بحث در مانعیتش مانعیت دو چیزه و این اما این مانعی که داریم بحث میکنه مانعیت وجوب موافقه نظامی هست اون مانعی که نائینی و اما میگه اون یا ترخیص در مسیت که مانع عقلیه یا تحافظ صبر و زید روایاتی مانع اثباتی مصنف میگه و نبای ما سه طالنجه مانع داشت این مانع را که به اون مواردهن اونها قائل به عدم وجود مقتضی برای جریان و اصول در اطراف هم. حالا یا به خاطر مانع اثباتی میگن خصوص در اطراف شدن مقتضی برای جریانش نیست تا بعد از مانع پیش بیاد یا نه مانع اثباتی داره و مختزی نداره اونهایی که قائل به عدم مختزی بحث از مانه نمی کنه. ما بیایم بگه مانعیت داره یا نرده مختی نیست برای جریانش ولی اگر مختزی بیاد بعدا میشه بحث بکنیم آیا این مختزی رو میشه با یک مانع ی بگیریم یا نه خب شیخ انصاری و ناینی و معاصلی قائل کسیری از معاصلی قائلا به عدم مختصیه یعنی کسی حق نداره در اطراف اصل ترخیصی اجرا کنه. وقتی نمیشه ترقیصی، اصل نمیشه ترخیصی اصل ترخیصی نمیشه اجرا کنی نوبت به مانعیت وجوب موافقات اتزامیه نمیرسه دیگه شما حق نداری از جاری بکنی در اطراف بحث این طوریه یعنی شاکله بحث اینه مختضی بشین اما در عینهایی که معاله ما وقتی مختزی این که این جریان اصول چراکی به مانویت وجوب معاملات تزامی هست حالا شهید صدر قائل به وجود مختزیه این مختزی بر جریانش در اطراف هست توبوتن هست اشکالی هست یعنی ادله ترخیص از دست برای عبرمسان این ها اطراف این هم میگیره توبوتن چه اشکالی داره اونها میگن مختصی برای جریانش هست ولی های مانه داریم میگن آره مانع داریم وجوب موافقت التضامی یه مانع مانه از جریان و در اطراف میشه لذا که قائل به عدم مختزی مثل مصنف و ناینی و تابعینشون آنها اونها دیگه از این بحث ها نباید نفسح بکنن از اون بحث بکنن برای چی دارم بحث می این بحث در کتب اینها باید حس بشه اونها قائل به عدم مختزی هست اصلا مختزی برای جریانش نیست تا مبتلایی به معنی باشی یا نباشه برای اونهایی که قائل به مختزی میشن مثل شیف صدر اونها میتونن بیان بحث کنن از وجوب موافقت انتظامیه به عنوان مانه یا مانیت مانعیت داره یا مانعیت نداره و اینا ها بحث های این بحث در چه کتوبی باید هست بشه در چه کتوبی باید بحث بشه یالان خیلی یا قائل به مختزی هم باز این بحث ها بودن نباید بحث بشه اونها وقتی میگن مختزی برای جریانش نیست یعنی احکیات تا هم واجبه دیگه برای آره چیمی هم میگن موافقت اتضامیه لازم یا نازم نیست؟ خب اینجا و قبول خب مصنف خواهده به جواز موافقت اتضامیه شده ولی میخواهد بگذن نباید بحث بشه شده چرا؟ اصل با هم در این بحث که به اطراف شبهه مقومه این که نداره مصنف قایل به عدم مختزی برای جدای آنسون در اطرافه نه در اطراف هست جاره نمیکنه کنه مصنف مظهر مصنفه دیگه خیلی از یعنی شوف هي محصول به احتياته لزوم احتیاط لزوم ووجوب احتياط شو استدلالات شو شيخ و حجوب ولی قالب وجود شيخ زاده نباید وارد بحثا بشه شيخ زاده نباید این بحثا مطرح میکرد بخاطر اون حق خود طاعه رو داره اون که قاعده بغه قابل بیان رو مثل مشهور مصنف قابل نیست اون قائل احتمال نیش قولی منطقیزه تا چه نزد به علم اجمالیه اون کسی نباید بحث بکنه شهیستت حسابش جداست ولی حالا خود مشهور رو داریم بگیم اگر کسی باقید این بحثتار رو رفت کنه اگر قائل به وجود مقتضی برای جرایان اصول در اطراف علم بگو اصول جاری میشه مختزی برای جرایانش هست اونها میتونن بحث بکنن ولی اون حاکیه قائل به عدم مقتضی مثل نواعینی و مصنف اونها نباید بحث کنم میگم مقتضی نیست دیگه حالا اگر خود به خیلی اهمیت نداره حالا یک تطبیق فرقی داره این تطبیق فقهی رو که مربوط به در متن اصول داره و خود مصنف هم در متن آورده حل توجزه زیدون به ماه مردد بین تاهر و نجس. با یک آبی که مردد بوده بین آب پاک و آب نجس. حضور گرفته منتها قفلتن و اگر قفلت نباشه شخص نمیتونه با آب مردد حضور بگیره قفلتن باشه تا اینکه مجرای قاعده فراغ باشه آیا عرض در دو طرف جاری میشه یا جاری نمیشه اگر شخصی غفلتا با یک آب مرتد بین نجس و طاهر بخاد وضوع بگیره آیا اصل در طرفین جاری میشه یا جاری نمیشه اگر این شخص وضوع گرفت و نماز خوند و بعد از نماز شک کرد که آیا تهارت هدثیه داشته یا نداشته مرحوم محقق نایینی قائل به جریان قاعده فراغ نسبت به نمازی که خونده و صحیحه و اجرای استثاب حدث نسبت به نمازهای آینده استثاب حدث نسبت به نماز بعدی قاعده فرا نسبت به نمازی که خونده شده و این اجرای دو از از ناینی مخالف با علم اجمالی موجود در مقام به خاطر این شخص یا با آب نجس بود گرفته یا با تاهر اگه نجس بوده نماز قبلی هم باطل اگه تاهر بوده نماز بعدی هم درست این تفسیر به چه چرا تفسیر بدیم چون عمدار مدار یکی از این دوتاستی که یا آب نجس بوده یا پاک بوده اگه نجس بوده نماز قبلی هم باطل اگه پاک بوده نماز بعدی هم زیده. چرا را بگیره چرا استثاب حد از این دوتا اصل با این علم اجمالی که در بین بوده و با این علم تفسیری متولد از علم اجمالی منافات داره لذا بر های ایراد گرفته بر محقق ناینی که این چه طرز اجرای اصول در طرفین که صفحه و بیست این مسئله رو اینطوری مطرح کردیم انهو ازا شک المسلی المسبوق بند هدف شکه فی تحصیل تهار بعد فراغی من السلاط و ما بعض الاعلام یعنی محطق به صحت سلاط المعقی به ها به خاطر قاعده فراغ و خون میکرده به وجود به تحصیل تهارت برای نمازهای آتیه به خاطر بعد از ثابت. و لذا قد اشکل علیه تلمیز و از سید و خوری گرفته کمان که در هایشه ایوروان همین ایراد رو داره بر اصطادش منجهت انهو التضام به عدم جریان اصول مؤمنت نافیت بی جمعی اطراف در یعنی خود مصنف مبناش چیه؟ التزام به جرعه. عدم جریان اصول مؤمنه ی نافی در اطراف علم اجمالی اصول در اطراف جاری نمیشه در شبهات مقروم به علم اجمالی الان مقروم به علم دیگه نماز قبلی با نماز بعدی یا هر دو یا باطل یکی باطل یا هر دو صحیح یه علم اجمالی داریم ما علم تفصیلی به صحت نمازی خونده شده نداریم ایشون ملتظم به عدم جریان اصول مؤمنه نافیه تکلیف در اطراف علم وقتی قاعده به عدم جریان اصوله قاعده فراغ رو چی جاری کرده قاعده فراغ اصل مثل برائت دیگه مثل اصل هلیت مسحح نماز قبلی نباید از قاعده فراغ جاری بکنه قد اشکل علیه من جهت هم نهو التزمه به عدم جریان اصول معاملات نافیه فی جمعی اطراف در مل چرا منتظم ناینی به عدم جلیان اصول در اطراف به خاطر اینکه که محقق ناینی قائل منی که اصول تنزیدیه مثل قائل فرا مثل استثاق اینها مغرز واقع هند وقتی میشه واقع با اینها احراز میشه اصول اصول تنزیلی شبیه همونده این اصول تنزیلی یعنی معدّا ها منزل به منزله واقعه یا با واقع هیچ فرقی نداره شما چه قاعده فراغ جاری بکنید چه استساب جاری بکنید چه علم تفسیدی وجدانی لدنی به واقع پیدا کنید هیچ فرقی نداره معدّا اصول تنزیلی منزل به منزله واقعه شخص متعبد به واقع میشه و تعبود به واقع و احراز حالت سابقه در هر کدام از دو طرف از اطراف علم اجمالی منافذ داره با علم اجمالی به انتقاض عهد طرف جزمند لذا قابل جمع نیست چرا اینجور جمع کرده حکم به صحت نماز قبلی و بطلان نماز آتی اگه با این وضع خواهد بخونه فلای و یلزم من جرایان ها پی جمعی مخالف مخالب و طلقتیه للمعلوم به اجمال پس محصل مذهب نا که محضور در جریان رسول در تمام اطلاف یکی از این دو امره یا لزوم تناقض از جرایانش اما این که در رسول تنزیدیه تناقض میاد. علم اجمالی به یک تکلیفی داریم رسول تنزیدیه میاد اینا رو رفتش میکنه و این تناقض میشه یا لزوم ترخیص در معصیت مثل موارد اصول مهملی نافیه ترخیص در معصیت و چون این دوتا محظور هر دو محذور عقلیه مانعی که برا نائیلی نسبت به جرایان اصول بر اطراف هست یک مانع تبوتی حساب میشه به خلاف شیخ مانع یک اثباتی و تنافیه صدرزهی به روایات استخابی رد لذا مردمای خوی اراده بر استادش اینه که نه مانع و نه مانع اثباتی از جریان اصول تنجیبیه و غیر تنجیبیه در جمیع اطراف علم نداریم در مواردی که مستلزم مخالفت عملی نشه یعنی تنها مانع لزوم مخالفت قطعی هست. اگه اگر مخالفت قطعی لازم نیاد چه اشکالی داره شما اصول در همه اطراف جاریم مانه اثباتی و سبوتی ندارم تنها مانع از جلیان اصول در اطراف در مذهب مرحوم های خویی چیه لزوم مخالفت قطعیه. این خود مخالفت قطعیه. اگه لازم میاد نمیشه اگه مخالفت قطعیه لازم نیاد چه اشکالی داره اصول در اطراف جاریش اینطوری طوری ایراد میگیره بر استادش و مجرد مخالفت امتظامیه رو میگه اشکال نداره مخالفت امتظامیه لازم میاد چه اشکالی داره مادانی که مخالفت عملیه لازم نمیاد اجرای اصول در اطرافه امجمالیه هیچ مانعی نداره و من المعلوم ان لازم من جریان قاعدت الفراخ المؤمنه و الاستصاب المنجست استثاب حدث من چیز دیگه چون تکلیف به تحصیل تحارت میاره بر انسان خوبا خصوص مخالفت الانتظامیه فقط مخالفت الانتظامیه لازم میاد نه مخالفت عملیه و لذا حکم امناعینی به سه حدث سلاط به ها و وجوب حضور سلوات رادیه خاطر استثاب حدث سابق انه یعلم اجمالا به عدم مطابقت عهد اصلی نه یا قاضی غیر یا استثنا چون یا شخص مختص یا طاهر اگه طاهر برا نماز بعد بدون میخواد اگه مختص نماز قبلی باید اثباتی باشه و این اجرای اصول اجرای اصول در دو طرف که از نظر نوینی گفته مشکلی نداره به خاطره مخالفت عملی برش متربطه نمیشه و تنها مخالفت اتضامیه لازم میاد. و مخالفت اتضامیه محصول حساب نمیشه و اینطوری حالا حق با ناینی یا معمومهای خوییه یعنی در زبران هم بین ناینی و معمومهای خویی حق با ناینی یعنی مطالبی ناینی داره خوصه تر از مطالبی که معمومهای خویی داره و خود طول می حالا شاید بحث جمله در اطراف علم اجمالی اگه کسی قائل به جریان اصول باشه، بگه مقتدی برای جریانش هست، میتونه بحث کنه از اینکه وجود جو موافقت خطی مانعی نداره. اگه قائل به عدم مقتدی باشه مثل نائینی، مثل مصنف، این حت این نباید بحث کنه به موافقت بر اینکه موافقت اجتماعی به اون معنایی که در ذهنها و در کتب آمده نیست. تأیون به این حکم فرعی فقهی توسلی بلکه التزام به یک حکم ظاهری مخالف با حکم معلوم اجمال حالا ما میتونیم یک حکم ظاهری مخالف با حکم معلوم اجمال صادر بکنیم یا نمیتونیم این محل خلافه بله اینجا در و این عدد به خاطر مانع ثبوتیه خب چه نه چه اشکال مبنایی خوب خب. نه در یک طرفش و طرف نه, نه. یکیش استفاد منجز نمیشتم ببین در این صفحه 223 اضافه کردم به تحبیر ناینی نا قاعدتون فراغ المؤمنه استصاب المنجز استصاب اصول ترخیصی بیگه باید شما وضو بگیریم در یک طرف سیاری کردن نه در دو طرف تنافی نداره ما بحثمون در مانعیت اصول مؤمنه و ترخیصیه میان بگیم چیزی در کار نیست وله استساب نسبت به نماز بعدی وضوع بگیر وس ترخیزی در همه اطراف جاری نشده در بعضی از اطراف دف شد شک مخالفت یک که لازم نیمده ببین مخالفت قطعیه لازم نهمیاد چون الان میخواد وضوع بگیر نماز بعدی رو بخونه حضور میگه نمازو بعدی رو میخونه لذا مخالفت احتمالی از مخالفت احتمالی هم مشکال نداره نا میگه در همه اطراف نمیشه از کرد نه در بعضی از اطراف در بعضی از اطراف جاری کرد برخون نا اینه ببین مبناش لزوم احتیاط تام در اطراف علم قواعد عقلیه منتهی قاعده فراغ حاکم بر قواعد عقلیه مثل منتجیت علمش ما من. قاعده فراغ رو حاکم میدونن حکومت قاعده فراغ این بحث اصلا در کتابش در کتابش مطرح بعد یه ادریسی هم نوشتم از عجود التغییرات جلد دوم صفحه 242 دوم. بقیه مباحث قبل و بعدش رو خودت کن بخونید میخوام ببینیم که بعد از وجود موافقت التزامیه این مرتبط به کسانی میشه که اونها قائل به وجود مختصی برای جریان باشه اونها میان از اینجا بحث میکنن لذا دلیل اینی که قائل به عدم مختزیه دیگه بعد از وجود به موافقت التزامیه معنا نداره براش اگه التزامیه به این معنا که اینها دارن میگن ولی اگر التزامیه موافقت التزامی به معنای اصطلاحی باشه یعنی وای ما میتونیم در موارد مجمالی یک حکم ظاهری مخالف با حکم معلوم بگیم الان من علم به حدشت احده دارم میتونم بگم هیچ کدام محدث نیست آره میتونم گفتیم دیگه قبلا گفتیم میتونیم جنابت برای هیچ ثابت نیست برای هیچ کدام ثابت نیست, کدام نیست. چرا چون ذاتیات از باب علم اجمالی خارجه و این مطالب رو باز به صورت خیلی مختصر. در صفحه دویست و و چیکارpostcssrالالتزام کلمات کلماتهم به معانن عبیده و هیچ کدام از اینها اون معنای واقعیش نیست یعنی الان 8 تا معنما نوشتیم از کلمات الان برای التزام التزامیا نیست بعضیا قائلا منگه التزام یعنی علم به حق خب علم به حق ما ایش دیگه شک نداریم ما اگه علم به حکم نداشته باشی اون حکم برای شما ثابت میشه برای چی میان تفسیر میکنن التزام رو به علم به حکم یعنی هم نیست ولی خب بعضی ابایند خب ما این چیکارشون مینم التزام یعنی علم به حکم علم به حکم اگه نباشه که احکام بر ما منجز نمیشه موافقت التزامیه یعنی ما علم به حکم داشته باشیم خب تفسیر شده چیکار کنیم ما این استراباد رو که میتونیم ورداریم اگه اینا نبود ما خیلی پیشرفت میکردیم خیلی التزام یعنی علم به حکم و بعضی ها دوم، التزام اولی موافقت التزام یعنی رضایت به طاعت الهی این هم ارفانیش کرد این هم یک معنی معنای سوم عزم بر اطاعت التزام یعنی عزم بر اطاعت معنای چهارم تقرب و قصد تقرب که مصنف قائل مصنف قائل به این معناست یا عقد القلب ما عقد القلب داشته باشیم به انجام تکاریف بلا انجام ندیم این ولی منکرش نباشیم کما علیه مشکینی در آشیه کفایه محشیه معروف کفایه مرهوم مشکینی خب اون قاعده به این معنای پنجم خب نه هیچ کدامش نیست بابن چرا که به اینها داره من در دفن میت مسلمان دفنش میکنم ولی اعتقاد بهش ندارم چون محل نظار مشهوریه دیگه محل نزاع مشهور همین قسمه اصلا تأخیدیات وارد نیست چرا میگن رضایه به طاعت مگه طاعتی؟ لفن مهیت مسلم اطاعت حساب میشه از نظر اصلاحین اطاعت نیست چون واضح تب... توسلیه نه توسلیه یا عزم بر اطاعت یا تقرب معتبر که مصنف رفته و خیلی عجیبه ما نظامون در توسلیات تقرب یعنی چی قصد تقرب یعنی چی خب این همون در کلمات دیگه ما الان رو نگیم کی میخواد بگیم که واقعا محل نظام اینها نیست انتظام معناش این نیست در موارد علم اجمالی ما میتونیم هر دو طرف رو بذاریم کنار و یک حکم سالسی بگیر اینو میگن انتظام موافقت انتظامیه وجوبش جوازش و عدمش منسالی اینها این نیست اصلا. تو ها نوشتیم و خیلی ها دارد دارن بر فقط محل نظام واجبات توسلی است تعبدیات طرن خارجه اصول عقاعد، معارف کلا خارجه مثلا معلبه اشمون این حاضر شده فنی کردم اینها رو خب مراجعه نکردم ولی یقینا هست اینو خب مرحوم مشکینی در همین باب موافقت اِستدامه داره بعد مصنفت خب میدونم بعد رضای به اطاعت و عزم بر اطاعت مال محقق عراقی محقق اصوحانی ناز و عراقی محقق مراجع نکنم مصنفت خواهد به قصد تبقه به نهیشون مجموع کلمات حضر نزا در توسولیات و موافقت انتظام گرد گفته به قصد اتاعتن غیر معقوله و که اون آهده من معین تعبودی هم. بعد آخرش فمولخ خسال کلام اندن مخالفت من حیث التزام و اینصد مخالفت هست و مخالفت به اکام فریه نماهی افیده مرد و را عبت بالالتزام مردنه بعدا تفسیلی که خودش قائله و میاد اونو متعرض میشه رد میکنه میدون تفسیل من قائل نیستم بین شباهات موضوعیه و حکمیه بین تعبودیات و توسریات قائل نیسته اصلا مجموع کلماتشی بگون ملخص شم خودم می نفسن نرسیدیم به تعبیرات مصنف قائل بین نیست تقرب رو میگه رو همه یه یه تکسریش من خب عملیه قضایی خوب اگه پیش بیاد بله عدوما رو گفتم که مخالفت قطعیه لازم نمیاد دیگه کی گفتم میاد مخالفت قطعیه وقتی که هر دو طرف رو ارتکاب بکنه بله اون در بعضی از اطرافه محل نزا در همه اطرافه اون بعضی از بعض بعضی اطراف ما بحث نمی کنیم وجوب و معافیت اتضامیه ارتباطی به جریان رسول در بعضی اطراف نداره اصلا در زمین اطراف نه نمیشه بگیم خیلی از چیزا این نه بعض از مبنای مشهور همینه مبنای مشغور که تکالیف مال جواره هست افعال جوارهیه و جوارهیه اصلا راه نداره مبنایشون اینه بله حرمت و وجوب اینا مال نیت و قصد این ها نیست خب بحث کنم بعد. اونم معید دیگه معیده نه باید بحث کنن نه قایل نیستن به اینکه جوانه و افعال جوانهیه متصفه به تکالیف میشه قایل نیستن وقتی قائل نیستن برای چینا رو میارن یا تشکیش دیگه یعنی وقت ماها رو میگیره علاقی وقتها رو میگیره چه دردی میخوره شاره گفتیم میت باید دفع میشه به هر نیتی حالا ما بیایم بگیم این موافقت میخواد یا نمیخواد. اقاب و ثباب اینها برش مترتب میشه یا نمیشه با اینکه محل نزا اولا در توسلیاتیه که اصلا قصد قربت و تقرب نمیخواد فرقیان بینش با موضوعیه و موضوعی حکمیش نیست ثانیا التزامی که ماها داریم در اصول بحث میکنیم غیر از التزامی که در علم کلام بحث میشه انسان به تک تک فروات منتظم باشه اون یه بحث کلامیه موافقت التضامیه باشه برش ایسان ملتزم باشه بینه الان این زنها عقد موقت رو قبول نمیکنن. این مخالفت التزامیه است و کفر. آیات و قرآن داره بعضی از دین رو قبول میکنن، بعضیش رو قبول نمیکنن. یعنی چی؟ بعضی از موارد میگن اگر دین عقد موقت رو تجویز کرده من این دین رو قبول ندارم این کفره دیگه پس چیه خفشا شاخدم داره زن باید مطیب باشه مطیب تمام احکام مطعه از خصوصیات مکتب امامیه است اگه کسی میتونه ردش کنه ولی خود زنها قبول نمیکنن میگن نه این نباید باشه این ظلم به زنه. یعنی به خدا نسبت ظلم میدن اینها با اون زمانی که به حضرت موسی و حضرت عیسی و پیغمبر ما نسبت های ناروا میدادن چه فرقی دارن؟ مثلک اینها با مثلک اونهایی که منکر متطینن چیه؟ فرقشون چیه؟ فرق دارن؟ با تمام روحیاتی که خود از زن خبر داره باز مده اینو تشکیرش کرده یعنی کدوم قلبه که مؤمن میشه ایمان به تمام دین باید باشه این چیزی به نفع ما ما مؤمنیم و یؤمنون به بعض و یک فرونه به بعض این آیاز قرام مال کیه ما بعضی رسمت ها را قبول میکنیم بعضی رسمت ها را قبول میکنیم در اون مساعد کلامی اون طوری مطرحه ولی در این مباحث استداحی اصولی که بیان بگیم ما در اطراف نجمالی ما میتونیم یک حکم ظاهری ترخیص بر خلاف هر دو بدیم به ذات مبنی مشهور که قایلا به اینکه علم اجمالی منعزیت عقلی داره نسبت به همه اطراف اونها برایش این بحث یعنی موافقت التزامیه برایشون لازم و واجب باید ملتظم باشن به احیاط تا نسبت به اطراف ولی نسبت به اون تفصیلی که گفتیم در رابطه با باب علم اجمالی که یک علم ضعیفتر از علم تفصیلیه و تنها عنوان رو بر ما منجز میکنه نه زباد رو زباد خارجمیش که به ذات نداره تنها چیزی که منجز میشه بر انسان عنوانه. اگر حکمی انوانی باشه با علم اجمالی منجز میشه یقینا یعنی موافقت انتظامیش هم همینه ولی اگر حکمی ذاتی باشه متقبنه به ذات باشه به هر کدام از اون دو قسمش در اون موارد موافقت ارتزامیه و ما میتونیم مرتزم باشیم به یک حکم ذاهی مخالف با حکم معلوم به یعنی نفی حدث از هر دو نفر به خاطر که احد و ما مبتز بوده نه ذات طرفین و حدث رو در ذات میتونیم اثبات کنیم نه در عنوان و شه قریبی هم نیست عجیب هم نیز. اگه عجیبم باشه این عجیب و کنار و عجیب اعلام بذارید مشکلش حل میشه اونها چقدر دارن؟ این هم یکی از ما ازا در مواردی که احد و هما محتسه حدث برای هیچ کدامش ثابت نیست نه, نه دیگه حکم ظاهری مخالف با حکم به اجمال میدیم در موارد ذاتی یا؟ به خاطر ذاتیات پسپات نمی حکم روی ذات نرفته ذات دو طرف رو در صفحه دویست و 24 از تعبیرات خود علام را بردم بر اینکه که منجزه در باب علم خصوص انوان فلخصوصیت و غیرو واسلتن فی باب علم اجمالی خودشون هم دارن که خصوصیت ما واصل نشده زیدیت و عمریت به ما واسع نشده و قوام هدث بین که مال زید باشه یا مال امر باشه نه مال اهدهما و فرق است بین که حکمی به ذات رفته باشه یا روی انوان رفته باشه الان اگه وقت روی انوان رفته باشه خوب اگر از انتفاع افتاد از انوان افتاد خوب از وقت خارج میشه اگه روی ذات بره هیچ موقع از وقت خارج نمیشه اینا فرد نیست انوان دخیله یا ذات دخیله ادخل الدار فا یا ادخل الدار لعن نکه اینها این میگن فرقه مرحوم شیخ حسین حلی و خیلی از علامه دیگه قایلا میگیر بین این دو تا تعبیل فرقه در یکی عنوان صداقت مدد نظره در یکی ذاتش مدد نظره یعنی در مواردی که میگه فعنک صدیقی یعنی ذات تو برام من مهم بوده صداقت حیثیتون تعلیلیه مهمی ده که شما بیاید وارد خونه بشی برای اکلام امسانیدم ولی بعضی از موارد لعنک صدیقی یعنی صداقت مهمه نه ذات تشخیص اگه معبدی تشخیص داد بعضی از اصدقای ظاهریه از ذاتشون این مولا بدش میاد نمیخواد ریخت اینها رو ببینه نمیتونه بذار بگن عنوار مهمیه ذات مهمه و فقه ما پر از اینهاست علم اجمالی عناوین رو تنجیز میکن احد و همه نجسه احد و نجسه. احد و رو بذار کنار همون فتوای میزای قومی بقیه رو ارتکاف کن احتیاط تام نداریم ما برای چی احتیاط کنیم؟ برای چی همینطوری قاعد به منعزیزیت علم اجمالی بشیم و در قافیهش گیر کنیم بعد؟ احدهما و هما نجیس احدهما کنان احد هیچ کدام اثبات نمیشه احدهما و هما ارتباطی به منجزیت علم نداره قبل از اینکه که به این برسه با یه قاعده دیگه این تنجیز شده بنابراین علم اجمالی تأثیری در با نداره احکام ذاتیه چه متقوم به ذات باشن مثل حدثی که متقوم به ذاته چه وقتی که متقوم به رقبه زمین و میدوک همسالین هاست و چه ذاتی باشه به با اون معنای که نسبت به تذکیه گفتیم فرقی نداریم ولی عناوین چرا؟ و اگه اناوین میخواد منجز باشه مجال صدق قرفی میشه مجال صدق عرفی میشه مجال نظر مکلف میشه مجال تشخیص خود کندر میشه این زن علم اجمالی داره به اینکه یا امروز این سه روز اول یا سه روز ده روز بعد کدومیش حساب کنه اگر بگیم علم اجمالی نسبت به هدث حیز انوان رو منجز میکنه یقینا یعنی نظر نظر خود زنه میخواد اول رو حساب کنه میخواد آخر رو حساب کنه و هم داره اینطور این نیست که چیزی باشه که غریب باشه کسی قائل نشده باشه. بنا شد در باب تدریجی یا مجموعماری با راض کنید امثال این رو بکنین. بدون چیزی در باب مجموعلی منجز میشه خصوص انمانه، اگر یک حکمی انوانی باشه یعنی موضوعش رو شاره محدت نکرده باشه. شار موضوع براش مشخص شخص نکرده وقتی موضوع مشخص نکرده تهدیدش نکرده موضوع مکور به خودت به عرف خوب، علم اجمالی تأثیر داره ولی اگر یک حکمی باشه که موضوع شواره محدد کرده باشه مشخص کرده باشه شما نمیتونی تعتقی بکنی خب یقینا علم کاری کاره نیست نمیتون کاری بکنه فرمایش شما چی بدون؟ اگر شما میشه بله همینه, بله همینه یعنی باید معلوم ذاتی باشه تا منجز بشه ما معلوم ذاتی نداریم بله الان حد از به ذات و ما این ذات رو نمیدونیم واسل نشده فلخصوصیت غیر واسلت این بیبا به من اجمالی ازا منسجز نمیشه برمید هیچ اشکالی هم نداره مهمینه که صغورش رو آقا این تشخیص بدن و اینو تقویتش کنن. این نظریه که خیلی از این بلدوبین‌های خیلی از فوراعات رو میداره شما به راحتی می‌دین به فرضای خودتون برسید بعد این در واقع علم نظری که این اینطور علم تفصیلی می‌خاسته که نیست دیگه. خصوصیت حاصل نمیشه مگر با علم تفصیلی. علم اجمالی خصوصیت رو نمی‌میده که اهد اهمال عجیسه خب یه چیزی حالا چرا عهد احمال رو تنزیز کرد؟ بخاطر که اینجاز احکام انوانیه آسون بوده که موضوعش محدد نشده بود از نظر شد ولی یکی از احکام ذاتیه بود مثل هدث جنابت خوب اثبات نمیشه متقومه به ذات شخصه و خیلی از چیزهای دیگه الان ادالت در امام جماعت متقومه ذات یا یک انوان احرازیه اگر یک انوان احرازی ظاهری باشه خب همه دارن اختیار میکنم ما ولی اگر یک چیز زاقی باشه من باید بشناسم طرف رو وقتی نشترسن نمیستن اختدا کنم لذا اختلاف روایاتم هم به خاطر همینه اختلاف روایات به خاطر همینه که من در مواردی معاشرت لازم شده یعنی ادالت واقعیه میخواد ولی وقتی گفتن مردم دارن اختدا می‌کنن، شما هم اختدا بکن یعنی ظاهرش مهم بوده و لازم نیست ذاتشی متصفه به ادالت باشه نه اوو شبه و او نوزم مطرح شد خروجی ذاتیات بعضی از موارد ترخیص بعضی از موارد الزام ترخیص که ینکه هدث مرتبط بینید که علم تفسیل به ذات باید باشه چه اشکال داره علم اجمالی نمیتونه کاری بکنه چیزهای آسون رو اثبات میکن و تنجیز میکنه اهد هما نجس اهدهما ر بزار نار اینم یک طرف میره کنار نه طرف شما ارتکاب بکن دیگه. کاری به خروجیش نداریم مضافه هم بر این که درانجام الزام هست یک قسم از یا الزام یک قسمش ترخیص اونایی که متبقیم به ذات موضوع یعنی مکلب خودش موضوع حساب میشه در اون موارد ترخیصه برای این موارد الزامه یقیناً این مباحث خیلی سخته در سختیش شکی ندارم کنن ولی چیکار کنیم اگر نگیم این فروعات رو چطوری حلش کنیم بعد؟ یعنی اگه راحت ما بیارم بگم علم اجمالی منتجزیت عقلیه داره هر کجا علم اجمالی بود شما احتیاط بکنید دیگه شما این مشکلی ندارید یعنی هر کجا داره بین اطراف علم اجمالی شد شما احتیاط کنید این خیلی آسونه ولی خب منتظم نیستن از نظر فتوایی از نظر فتوایی منتظم نیستن وقتی نیستن ما این نیست و چطور بیایم اثبات کنیم؟ یعنی به تصدیق شما برسه برای اینکه در بعضی از مواد واقعا اینطور اینا منتظر نیستن قاعدم به اینکه بر هیچ کدام قصف واجب نیست ولی معذاره یکی به دیگری اختیار نکنه رو این روی چه مبناییه ما مبناشی مخایم بفهمید اگه این حدث هست قصف میخواد اگه نیست چرا نتونان اختیار کنن احد ما به دیگری بعد در مقابل اینها چرا؟ خیلی از اعلامی که ذکر کردیم اینا قاعده به جواز اختدا شدن و خوبهات دیگه حضر باید فرق باشه بین احکام انوانیه و احکام ذاتیه علم اجمالی خصوص انوانیات رو تنجیز میکنه در حد انوان انوانم که باشه هیچ ارتباطی به ذات نداره و موضوعش موقول به عرف یا شخص مکنده و تشکیص مکنده و نظر مکنده یه موقع در مواردی که علم اشمالی هست نگیم دنبال چیزی باشیم که شار موضوع رو ما بیان کرده باشه. نه لازم نیست موکول به عرضه و خیلی از موارد شما در این موضوعات این طوری که انوانیت با موضوعش از خودتون بگیرید یا از عرف بگیرید اعتباط به شاره نداره بله یادوم به به می‌تونیم با در این از, از موضوع برای مخالفت عملیه نمیمونه که وقتی حدث ثابت نمیشه خب موضوع ثابت نشده تا حکمی بیاد تا گناهی باشه از ما خب اگه حالا که میگن بارم که با اون واقعی که این آمده نظر شد مخالفت داره میخونیم ما اگر منیم افت این که داریم میگیم برای عمل داریم میگیم ما بحث های سوری عبدا نداریم یعنی اون چیزی که داریم میگیم برای عمل داریم اشخاص در موارد علم اجمالی به حدث حدث ثابت نمیشی نموانده و حالا این مثال شاید استقراف بشه خیلی از مواردی مفیده حالا مثالهای هایی تو زهن هم هست برای قردانه داده دارو حوصله می کنم. شما صدا یا نه بابا. خبر بیاره میخواد من سر راغ بگیم بعد